بیان آن که آن چه بیان کرده می شود سورت قصه است زان که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج و مید بر ده شد خراب کیفیعت نزم و لیوالغافیه بعد ما ات اصول الافیه ما جنون واحد لی فشجون بل جنونن فی جنون فی جنون ذاب جسمی من اشارات الکنا منز ایم تل بقاع فی الفنا ای ایاز از عشق تو گشتم چموی مندم از پس سر تو گسی من بگوی بس فسانه عشق تو خواندم به جان تو مرا کفساه نگشتستم بخان خود تو میخوانی نه من ای مقتدا من کوه تورم تو موسا وین صدا. کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟ زانکه موسا می بداند کو تویست. کوه می داند به قدر خیشتن، اندکی دارد ز لطف روح تن، تن چه استرلاب باشد زه آیتی از روح همچون آفتاب. آن منجم چون نباشد چشم تیز، شرط باشد مرد استرلاب ریز، تا لابی کند از بحر او، تا برد از حالت خوشید بود جان که زسترلاب جوید او سباب قدر داند ز چرخ و آفتا تو که زسترلاب دیده بنگری در جهان دیدن یقین بس قاصری، تو جهان را قدر دیده دیده ای کو جهان سبلت چرا ماریده ای؟ آرفان را سرمه ای هستان به تا که دریا گردد این چشم چجوی ذریع از اقل و حوش من است این چه سودا و پریشان گفتن است چون که مغز من ز اقل و است، پس گناه من در این تخلید چیست نا گلابو راست که اقدم به اقل جمره اقلان پیشش بمورد یا مجیر العقل فتنال هجا ما سوا که لب اقول مرتجا مشتهی تول عقل مز جنن ما حسد تل حسن مزین هل فی هوا که مستطاب قل برا بلاه و یدزی که سواب گر به تازی گوید ور بر پارسی گوش و کو که در فهمش رسید باده او در خور هر حوش نیست حلقه او سخره هر گوش نیست، بار دیگر آمدم دیوان بار، رو رو جن زود زنجیری بیار، غیر آن زنجیر زلف دلبرم گرد دو ست زنجیر آری بردرم.